این شروع بشره جمیعه و الورود السلام علیکم و الله و برکاته های گرامی به بخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب داریم به داشته های امشب اهتفو احلا نشید اهتفو احلا نشید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 لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شنمندگان عزیزی رادیو صدای خلافت بعد داشته های برنامه امشب خوش آمدید نخوست از همه به خبرها می رویم نیروهای دولت اسلامی موفق شدند تا عساکر ارتش عراق را از اطراف منطقه جبهه در شمال غربی ناحیه البغدادی در غربی ولایت انبار بیرون کنند. این موفقیت پس از آن دست آمد که مجاهدین دولت اسلامی در حمله گسترده خود چندین تانک نوی همری رافیزی را منهدم کرده و دو عراد وسایت نقلیه آنها را غنیمت کردند. در همین حال یک حمله کننده استشادی کاروان نیروهای اراقی را در نزدیک منطقه بوحیات در شرقی شهر حدیثه در هم کوبید که منجربه از بینرفتن چندین وسایت نقلیه و یک موتری ماین پاکی گردید. گزارش از شام حاکیست که دولت اسلامی در درگیری های ولایت حلب دست بالایی داشته است. در تازه ترین موارد مجاهدین خلافت اسلامی روستای یحمول واقع در شرقی شهر عزاز را از گروهای مخالف تصرف کردند این در حالی بود که گروه های مخالف پس از درگیری های شدید مجبور به فرار شدند تکتیر اندازان خلافت اسلامی پنج تن از نیروهای عراقی را در منطقه زوبه در جنوب غربی شهر بغداد به قتل رساندند تازه تر اینها از نایجیریا حاکیس که یک حمله کننده شادی با استفاده از واسکت انفجاری یک تجمع اعضای پارلمان نایجیریا را در شر مایدوگوری در هم کبید که منجر به کشته و زخمی شدن سی و گردید سه سرباز کردی در اثر حمله نفوزی در روستای شیوخ سفلا در غرب کوبانی کشته شدند مجاهدین دولت اسلامی موفق شدند تا راه تدارکاتی ارتش عراق را در بین مناطق جرایشی و بوهاییس به سوی رمادی قط کنند رمادی مدت چار ماست که شاهدی در گیری شدید می باشد در همین حال یک خبر دیگر از رمادی می رساند که در اثر درگیری ها میانی مجاهدین دولت اسلامی و ارتش ایراق بیش از سی تن از اساکیر ایراق کشته و یک اراده تانک هممر، یک اراده بی و یک بولدوزر از بین رفته است. یک اراده تانک ارتش سوریه در اثر شریک یک راکی دستوی مجاهدین دولت اسلامی با تمام سرنشینانش در منطقه حسیس در شهر خمس از بین رفته است. مجاهدین دولت اسلامی موفق شدند تا یک بال تیاره اطلاعاتی نیروهای راقی را در شرق شهر فلوجه سقوط دهند در همین حال یک حمله کننده استشادی با موتر زیرپوش بمب گذاری شده مقر ارتش عراق را در جاده راه در شمال رمادی هدف قرار داد که منجر به کشته شدن ده ها اسکر و انهدام سه تانک گردید یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمعی شبه نظامیان حکومتی را در منطقه خلف در شهر مکللا مرکزی حزرماوت آماج قرار داد که منجر به کشته شدن تعدادی از مرتدین گردید. گزارش‌ها از بغداد حاکی است که دو همراکننده استشادی دولت اسلامی مقر پلیسی از زیدان در جنوب غربی شهر بغداد را آماج قرار دادند. نخست مدتی چند دی با اساکری مقر در رخ داد و سپس همراکنندگان کمربندهای انفجاریشان را منفجر کردند که در نتیجه حدود 20 اسکر کشته و شماری هم زخم برداشتند. این در حال است که درست پیش در سه حمله استشادی بیش از ست رافیزی در نقاط مختلفی بغداد گشته شده بودند و خبر اخیر این که های روسیه مناطقی را در شهرهای رقع و دیر و زور هدف حملات هوایی قرار دادند که منجر به شهادت دوازده غیر نظامی و جراحت ده تن دیگر گردید در جستجای حق بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را, را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنت فرا می‌خوانند اینها کسان هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمعه شب ها از رادیو سبه خلافت 90 FM بلغوا مننا بابكر السلامة درجة حق في كل دار دولة الإسلام أمن وسلام سلام برادران مومن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته شماع شنوانده راديو السلام خلافات السن. یک بار دیگر شما را به برنامه در جستجوی حق خوش آمدید میگم ما با مسلم خراسانی و برادر گرامی ما عبدالرحمن روحانی در خدمت شما هستیم امید است که جمعه را سپری کرده باشید و امید است که سوره کهف را تلاوت کرده باشید و از این سوره درس های عظیم را گرفته باشید بله برادر گرامی الله تعالی در سوره کهف داستانی همان مردان غار را بیان می کند که به خاطر عقیده درست اسلامی به غار پناه برده بودند که در آن زمان پادشاهی ظالم و پرستی بود و تمام نظام شرکی بود و مردم را به صرف معبودان باطل فرا خواند. و اگر کسی این کار میکرد او را مجازات می نمود. خیلی فضای تاریک و آلوده به شرک بود روزی ایشان در مکانی مراسم عبادت معبودان باطل را راه انداخته بودند و همه مصروف عبادت بودند در این هنگام جوانی با فکر و اندیشه آمد و زیر درختی از تواقید کنار گرفت همینطور جوانی دیگری آمد و بلاخره چند تن از این جوانان درم اینجا جمع شدند و برای یک دیگری خود حالت خود را نمی گفتند بلاخره یکی از ایشان جرأت کرد و گفت که من و شما را چی چیزی به اینجا جمع کرده است دیگرش گفت که عقل من این را نمی پذیرد که معبودان باطل را بپرستم گفتند که ما و شما را همین عقیده به اینجا جمع کرده است پس حالا اگر کشته هم شویم به این تواقید تسلیم نمیشیم این جوانان پسران وزرا بودند به همین خاطر پادشاه به کشتن ایشان عجله نکرد گفت مهلت میدهیم ایشان را تا توبه کنند این جوانان دلیر به نظام تاغوتی تسلیم نشدند و به غار پناه بردند و از الله دعا طلب کردند گفتند یا الله ما را از رحمت خود بهرمند و راه نجاتی برای ما فراهم نمان بله روحانی صاحب امروز چی شده کسایی را که زیر نظام های تاغوتی زندگی بار را سپری کنند، آیا سوره کهف را تلاوت نموده به معانی آن فکر نکردند اگر ما هر آیت قرآن کریم را تلاوت کنیم و به معانی آن فکر کنیم در میالیم که هر آیت به ما حق و باطل را آشکار می کند. در هر آیت هدایت به سوی نور و جلوگیری از تاریکی نهفته است پس نصیحت ما به شنونده های گرامی این است که همیشه پابند به با تلاوت قرآن کریم بوده و به معانی آن فکر کنند و همانند برادری که میریم و با ایشان سخن میگیم به فضل الله تعالی راه هدایت را پیش گرفته آنها نیز هدایت شوند و به کاروان حق بپیوندند بله خراسان سیب حال میاییم سخنان همین برادر را می که چه گونه رای حق را یافته است لن نرى هذا ولا ذاك وذاك برأينا دولة الحق هناك يا ابا بکر الحسيني فهكا مدته الايدي تبيعك اماما مدته الايدي تبيعك اماما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته براذره گرامی مشکو بر ما خود معرفی کنین بسم الله الرحمن الرحيم اسم من دكتر سنيماست جزاك الله خير براذر شما برام بگین که از کجا هجرت کردین من قور هجرت کردم ماشالله، دولت غور تجارت کاربار چیز داشتیم؟ تجارت نداشتیم، مکتب خواندیم و از مکتب رفتیم به مکتب راه کردیم و به امارت رفتیم کس جاشتیم شما رو دعوت داد که به تنظیم امارات یک جا شدیم یا خودتون رفتیم؟ مواقعیت تعداد ملا بودن که ما را دعوت دادن و از واقعات دولت هم جا تر آگاه داشتیم و از مزو خاطر ما دولت فاسقی بود دولت راه کردیم که تنظیم اسلامی که قانون اسلامی به سطح دنیا رواش شوید ما به مخاطر با دولت راه کردیم و رفتیم امارات. امارت بارک الله فیکر شما باز از امارات چگونه به خلافت اسلامی را پیدا کردیم که بین با خلافت اسلامی یک جای شوید و با شیخ سوا بکر با بغدادی بایعت کنین؟ ما زمانی که ما پاکستان دا تدریس داشتیم بخش داکتری کورس خاصی میخواندیم در واسنا از طریق اینترنت معلوماتی داشتیم به شام عراق بعضی دیگه برادرای دیگه بودن که علاقمند بودن شام عراق داشتن و زمینه بود که یک وقتی تعداد افراد امارت زیاد بودن که علاقمند به خلافت اسلامی بودن و از طرف امارت لایه پخش کرده بودن که از زبان خود ابوبکر بغدادی خلیفہ مسلمین که خلافت کیا یکی از یکی از جز و کسانی که بر خراسان ادعای خلافت میکنن اونها از ما نیست ما چون که ضرورت ما به خراسان یا در افغانستان و پاکستان ضرورت نداریم به خلافت چونکه که امارات و دیگه شوبات دیگه ازبای دیگر, دیگر, دیگر هست که اونجا جواد مینن اه امارت نامنهاد بعضی برادرایی که در خلافت هستن اینا را تکفیر میکردن یا خیر اه زیاد اوت تکفیر میکردن از زمان شد که ما در معسكر امارت در اونجا تعلیم میکردیم و آمد یک شیخ شیخ کلانی از اونها به نام شیخ ندام احمد بود آمد در اما اسنا خادم عبدالرؤوف که نائب والی خراسان بود در ما اسنا توسط درم شهید شده بود و او اماده بر جلو تمام زیاد نفرات بود دا اونجا که بلاشت گفت که شما نشو یک روزی که شما بودن و بروین مثلی عبد الرؤوف خادم بری ماوزه بالله مرتاد شوین اون او اول افر... فردی از امارات بود خیلی آدم خوبی بود اون راه راک درفت اونجا که نمیدونم از تنظیم های مختلفو اینجا خلافت نیست ابوبکر بغدادی گفته که در خراسان ما ده نام خلافت نداریم آه. آه دیگه کسایی که جرب میشوند در اینجا به نام خلافت چیکردن اونا از طریق امریکا یا از طریق دیگه کشورای دیگه برای شما بالا شدند حال که آمدی به سرزمین خلافت اسلامی چی احساس داری خود دیجه در سرزمین خلافت اسلامی که آمدیم بهترین واقعیت قانون شریعت اسلامی هم جاری است به تمام امک معنای است Uh -huh. و ار برادری که میخواهد که معلوماتی حاصل کنه یا معلوماتی کدام شکه شوبه‌ای بازو پیدا و بیای با داخل خلافت اسلامی و ببینه اگر واقعیت به طریق قانون اسلامی جاری نبود و پس دوباره راه کنه برون ما تقریبا ابتداءن که آمدیم با خاطر معلومات آمده بودیم با ما گفتن که امکان داره شما اگه بو که ما در امارت بودیم که رسیدن به شما شمار ذب مینن علال منن. و اگر بوگین که خوستان ما انفیم یا کدام مزایئ دیگر به زبان بیاورین هم شما نمیگزارن شما علال علاوه مینن امید. ما گسین توکلت الله آنچه شد تا که یک مرتبه باید دجستوجوی یک رای باشه که رای درست به خود انسان انتخاب کنید در زندگیت ما اومدیم تا اینجا search دیم واقعیت که گپ ها همگی شایعاتی مردومه بوده کسایی بودن که بر خلاف اسلام شایعات و تبلیغات داشتن الحمدلله سایه خلافت ترین سایه اسلامی با تمام منا شریعت جاری است. همدل بتوانی آسایش آرام زندگی میلیم. سری زری پرچم سایه خلافت. اجازه کن خیر بعضی کسا میگن که اینها خوارج هستند و یا قرآن غلط تفسیر و ترجمه میکنه برزین چی گفتنی داری؟ او کسایی که وقت خلافت خوارج میگه، اصلا شاید اینکام داره خودی آنها خوارج باشه. و خاطر که ببین تمام امیر خودشان هم همون خودشانم خودشان هم این فکر مینن این ریسس دارن که تمام کفار جان دوست جمع شده و امی خلافتو میکوبه از طریق هوایی تا از طریق زمینی که است اونا که است با آل فیلن با زبان خودشان اکثریت همون مullah میگن که در جان هیچ کشور اسلامی وجود نداره خودشان هم با سایه کشور کفر با گفته خودشان زندگی مینن پس اونا خودشان تحلیل کنن که آیا خوارج اینا یا خوارج خودی اونها بازی کسا میگن یک مثلا تیر میکنن میگه که جس تابع کل یعنی خلافت اسلامی فکر میکنن که یک جزء است و تمام دنیا را کفر گرفته آیا واقعا نوت شده میدونه که جس تابع کل شوه آیه خلافت اسلامی بهونه بره یک جای شوه یا اون بیان به با خلافت اسلامی انا بیان با خلافت اسلامی در زمان ابتدای اسلام هم که میشد بود حضرت فرما صلی الله علیه بود کل نبود. بود توسط زمت و توسط تلاش که بود دنیا کفر گرفته بود توسط تلاش و زمت های آ... بود که اسلام پاک شد آلیفی لنم که است در دنیا که یک مملکت اسلامی وجود نداره پس خودشان احمان مگیم مولای در باره می که در جهان جهاد امروز فرزی این شده بعضی از مستعبات انجام میتنه ولی فرزی اینو که انجام نمیتن اونا باید که خودشان تلاش کنن زمد بکشن کسی که خان اسلام از خان قانون اسلامی است باید خودش به خلافت برسانه اگر خلافت کدام غلطی داشت داخل کی بیامدن ببینن کدام اشتباهی داشت در دا اون زمان یا خلافت بگن که این اشتباھ تو غلط است یا کہ همون زمان راه کنن برون پس جزاك الله خیر دشمنان دین الله کوشش میکنن که مردم بترسانن از خلافت اسلامی میگن که وجبري مثلا سرطان میبروی و بعضی شبهات دیگه ایجاد میکنن این کسایی که میترسن و نمین برزی چی پیام داری؟ برای برادران پیام این است که به هر تنظیم و به هر نظام کوفری اسلامی که باشه ابتدهن تو که برای بخاطر معلومات هیچ کس در کاری نداره واقعیت بیا خود یک مرتبه از نزدیک ببین این گپا کی است امگ شایعات مردم است کسایی هستند که دشمن اسلام هستند ای گبه گفته همهگی دروغ است و پروپاگاندی دشمنان اسلام است از نزدیک و برادرایی که خانه اسلام هستند خان نظام اسلامی هستند یک مرتبه بیان ببینن از نزدیک و بعدن در اسنا میتونن که دوباره هیچ کس به سر کس در زور زور و ظلم نمیکنه جزاك الله خیر. السلام عليكم ورحمة الله. لَنَرَ لن هَذَا وَلَذَاكَ وَذَكَا بَرَأِنَا دُولَةَ الْحَقِّ هُنَاكَ يَا أَبَ بَكْرِ الْحُسَيْنِيِّ فَهَكَا مُدَّةِ الْأَيْدِيْ تُبَاعَكَ إِمَامًا مُدَّةِ الْأَيْدِيْ خب شنونده های گرامی امید است که سخنان برادر ما را شنیده باشین که چیگونه به حق را پیدا کردن و چطور به خلافت اسلامی آمده و راهای بسیار پرمشقت را پیش گرفته و تا به کاروان خلافت یک جا شده و فعلا از زندگی خود راضی است خب فکر میکنم روحانی زیب که در دقایق اخیر برنامه قرار داریم بله خراسان سیب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم ناگزیر با شنواندگان عزیز الله افظی کنیم تا برنامه دیگر که باز هم با یک هدایت یافته دیگر هم صحبت میشیم و سخنان ایشان را تقدیم شنواندگان عزیز می کنیم همه شنواندگان عزیز را به اللهی لایزال می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکت قریبا قریبا ترون العجیبا سراعا رهیبا و سوف تران بیعقری دیارک تکون المعارک لأجلی دمارک حسام برا قریبا قریبا خیلها خوشحال و مسرور استم که به تعبیر واقعی در های گرم نبرد و کارزار علیه همه کفار و, و مرتدین زیر سایه خلافت زندگی به سر میبرم و قرار است که در این روزهای نزدیک مرتدین غلام اجیر و قراردادی رژیم فاسد افغانستان نبرد و پیکار را علیه مجاهدین دولت اسلامی برا به اما اینها نمی دانند که ما پسران کسان استیم که امپراتوری فارس و روم را الله تعالی توسطشان شکست داد. و اینها خیلی کوچک کوچکند از ربم استدعا میکنم و پیام دارم برای همه مجاهدین دولت اسلامی در خراسان زمین تا ترس و حراس را در وجود خود جا ندهند و ثبات استقامت و پایداری را هم از دست ندهند چون ما انشاء الله کامیاب استیم و دارای فکر و استقلال فکری هستیم و مهمتر اینکه که رب ما وعده پیروزی را داده است ولئِي جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا رَبُّ مَوْضُعَ الْمُصِيرَةِ سَلَفَ الرَّصَاصُ وَجَاءَ الْقِصَاصُ فَأَيْنَ الْمَنَاصُ شِرَاغَ الْوَرَاءِ إلَى الخِيلِ جَالَتْ وَشَالَتْ وصالات لهذا قام الاسلام في بلاد الرافده. دولت الاسلام رغم في دولت اسلامی از جماعت تا خلافت قسمت دوم رغم في پس از اعلان دولت اسلام عراق در سال دوزار شيخ ايمان الزواهري در مورد عدم موجودية القايدة در عراق سخن ميگويت اولا اود ان اوضح در ابتدا می خواهم بگویم که حالا چیزی به نام القاعده در عراق وجود ندارد بلکه به فضل الله متعال جماعت القاعده در سرزمینی بین نهرین همرا با سایر جماعت‌های جهادی تحت دولت اسلامی عراق جمع شدند و آن حکومت شرعی است که بر پایه منهج شرعی صحیح قرار دارد و توسط شورا تأسیس شده است و هی امارات شرعیه تقوم على منهج شرعی صحیح شورا و الان قد حق و صداقت آشکار گردیده است آنانی که از اسلام جهاد و اهل سنت در عراق دفاع کردند مجاهدین بزرگوار بودند که در رأس آنها دولت اسلامی عراق قرار دارد که هنوز به فضل الله تعالی بر عقیده و منهج خود استوار و محکم است و از ثوابت اسلام تراجونه نکرده و دور نگشته است با وجود این همه جنگ بزرگی که در برابرش انجام گرفت، مجاهدین بزرگوار در راسیون دولت اسلام عراق دینی برگردان هر مسلمانی آزاد و شریف در عراق دارند. اگر آنان نبودند، وضعیت علی سنت در عراق مانند وضعیت علی سنت در ایران می بود که توسط اسماعیلی صفوی ذلیل شدند. آنها همچون صخره ای هستند که سیاست آمریکا را در منطقه شکست دادند که هدفش تقسیم عراق و سعودی و در نهایت تقسیم مصر با چند پارچه بود و کسی که مسلمانان را از این نقشه شیطانی و امریکانی جاد داد تنها مجاهدین بزرگوار عراق و در رأس آنها دولت اسلامی عراق می و الذي انقذ المسلمین من هذا المخطط الامريكي الشيطاني هم مجاهد العراق الشرفاء و على رأسهم العراق الاسلامية. دولت اسلامی امیدی مسلمانان از زبان شیخ ابو لیبی. و في اقطار الارض كانت ولا لیبی چشمان تمام امت اسلامی در تمام گوشه های جهان منتظر شما بوده و همچنان خواهد ماند و منتظر روز فتح بزرگ و تمکین عظیمی اند که شما پایه و اساس آن را افگم و خشتهای اولی آن را با برپایی دولت اسلام عراق گذاشتید دولتی که از رحم دردها، زخم‌ها و سختی و قربانی‌ها قد علم کرده است تا با یاری الله فرزندی جدیدی باشد که در این دنیای تاریک می درخشد. نه با سردادن فریاد و نوحخانی و یا و بلکه با تحلیل و تکبیر و آشکار کردن کلمه ایمان و توحید. إنما بالتحليل والتكبير وأصداء كلمة الإيمان والتوحيد وبد لز المدهيد عتي فستبشريلة بعد الزعلاني دولة إسلامي عراق مجاهدين با جنجها بزرجي روبرو شدند، ووتلفات سنجيني رابر دشمن صفاق وارد کردند مدة زيادة قيام دولة إسلامية عراق نجزة تبوت كشيخ أبو عمر البغدادي وشيخ أبو حمزة المهاجر در أثر حملات حوايية نيروهاي أمركاية بشهادت رسيدان بعد شهادت الشيخين شراية رحبرية دولة إسلامية عراق جمع قردية شيخ أبو بكر البغدادي حفظه را من حيث أمير المؤمنين برغو در دورة حاكمية أمير المؤمنين أبو بكر البغداد حفظه الله مظالم أخرى السويني روحي بشار بالا مسلمان سنة مسحب در ديار شام شروع الله الله الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر مجاهدین دولت اسلامی عراق صبر نکردند که نیروهای جنایتکار بشار بالای اهل سنت شام ظلم کنند بدین منوال چندین جبهه به خاطر دفاع از اهل سنت شام به سوی سرزمین سوریه فرستاده شدند وصل الحال في الشام الى ما وصل؟ همگامی که شام به آن حال و روز رسید خونها ریخته شد و به نوامیس به احترامی شد اهل شام از جهان طلب کمک کرد اما اهل زمین آنان را به حال خود رها کردند این بود که بر ما واجب شد که حتما به فریاد و یاریشان برسیم بناورین، جولانی را که یکی از سربازان ما بود فرا خونده همراه و تعدادی از فرزندان خود را از عراق به شام فرستادیم تا با گروه مخفی در شام بپیوندن و نقشه ها را برایشان کشیده پلان کاری را برایشان ترسیم نمودیم و از سروبت بیت المال هر ما نصف مال دولت اسلامی را به آنان بخشیدیم و آنان را با مردانی آزموده و مجرب امداد کردیم بعد از گذشت مدت اندکی جبهات مرتبط با دولت اسلامی عراق با های زیادی دست یافتند شورای رهبری دولت اسلامی عراق بار دیگر جلسه دایر کردند تا به طور آشکار و علنی در شام ظاهر شوند بدین ترتیب دولت اسلامی عراق در سرزمین شام ظهور کرد و نام جدید تحت عنوان دولت اسلامی عراق و شام اعلان شد دولت اسلامی في و وقد بعد الله تعالى و پس از استخاره نمودن به الله متعال و مشوره گرفتن از کسانی که به دینداری و حکمتشان اطمینان داشتیم تصمیم خود را بر این گرفتیم برای ادامه راه خود در توسیعی جماعت به هر آنچه که گفته خواهد شد توجه نکنیم زیرا رضای الله تعالی از هر چیز بالاتر است و اگر اگرچه به خاطر این کار های دوچار خواهد شد با توکل به الله اعلان می کنیم که نام دولت اسلامی عراق و جبه نصرت ملغا گردیده و هر دو را زیر یک اسم به نام دولت اسلامی عراق و شام جمع می کنیم بی جهاد متفی قدم الله الاسلام اس الله از قبل بیشتر به فعالیت های مجاهدین دولت اسلامی برکت اندا. و مجاهدین به کمک الله متعال توانستند تا مناطق و ولایت های زیادی را در سرزمین شام تحت کنترل خود درآورند به طور مثال می توان به ولایت های رقه حسکه دیرززور حمس حلب غیر اشاره کرد در سلسله این فتوحات شهرهای تاریخی موثل انبار تکرید و کوهستان سنجار نیز در عراق به دست مجاهدین افتید الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء من مضوا يرجون مولأهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فدا من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فدا أهل بدل وعطايا أهل جود وإباء <تصفيق> أمة نستمشي قد الشرقه شمس الصمود ولقد سر نجموان لی رب المجد تلید همتی بستبش ریقه شمس الصمود ولقد سر نجموان لی المجد تلید شنا عزیز شما قسمتی دومی تاریخ دولت اسلامی را شنیدید. ادامه این تاریخ را در برنامه های آینده تعقیب نمایید. لي نعيد النور والإيمان ولعز المجيد برجال طلق الدنيا وفاز بالخلود وأعد أمم الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد فجر فرق بالنصر المبيد دولة الإسلام قامات